دوستان، حال وقتشه کتاب مقدساتون رو بردارین و برای درس دیگری از کلام خدا با ما همراه باشین. در ادامه بررسی کتاب مقدس، حالا آماده ایم که کتاب داوران رو بررسی کنیم. کتاب داوران با ما در مورد دوری تاریک تاریخ یهود صحبت میکنه، اما درس های عملی زیادی هستن که میتونیم از این کتاب یاد بگیریم. پس حالا که مطالعه کتاب جدید داوران رو شروع می‌کنیم به دقت گوش کنین این شما و این هم معلم ما زمینه کتاب یوشع پیروزی بود بروید و سرزمین کنعان سرزمین وعده رو فتح کنید یکی از مشکلاتی که در کتاب داوران ظاهر میشه به این دلیل که اونها بر تمامی مردمان سرزمین کنعان غلبه نکرده بودند همون مردمی که قرار بود بنی اسرائیل بر اونها قلبه کنند، برعکس اونها بارها بر بنی اسرائیل در دوره داوران غلبه کردند. پس پیغام کتاب داوران اینه که اونها در قلبه بر مردمان سرزمین کنان موفق نشده بودند. این فکر که خدا دستور جنگهای نابود کننده رو به قومش داده، سوالاتی رو در ذهن افراد متفکر ایجاد میکنه. اگر شما شخصی باهوش، متفکر و روحانی باشید، مطمئنم که وقتی این کتاب تاریخی عهد قدیم رو مطالعه می‌کنید این سوال در قلب و ذهنتون شکل خواهد گرفت. در حالی که ما کتاب‌های تاریخی و کتاب‌های پادشاهان در عهد قدیم رو مطالعه می‌کنیم این موضوع تکرار خواهد شد. از این رو فکر می‌کنم که باید قبل از اینکه وارد کتاب داوران بشیم توضیحی از جنگ‌های کننده بدیم. به این سوال توجه کنید چطور خدایی که ما امروز میشناسیم امکان داره به جنگ های نابود کننده فرمان بده. سؤال حقیقی سوالیه که اینجا بر خود جنگ تمرکز کرده. آیا جنگ موضوعی کتاب مقدسیه یا خود جنگ اشتباه است؟ بسیاری از پروتستان دیندار هستند، بسیاری از دینداران مذهبی و افرادی از مذاهب دیگه که برای این همیشه جنگ فی نفس خطا هست و اونها حاضرند بر سر اعتقادشون جان بدن. اونها عمیقا معتقدند که اشخاص با وجدان به هیچ عنوان در جنگ شرکت نمی کنند. من دوستان زیادی در بین هر دوی این گروهها دارم و احترام زیادی برای سلچویان صمیمی و پارسا قائل هستم. من ساعتها با اونها راجع به این مسئله صحبت کردم. مخصوصا با پروتستان ها. اونها آیات جالبی دارند که به عنوان مبنای عدم خشونت نقل می کنند. اونها دلایل، مستدلی دارند که در رابطه با موضع عدم خشونت با اون استناد می کنن. فلسفه اونها به نظر میرسه رسه این باشه. من حاضرم که قربانی جنگ و خشونت بشم اما مایل نیستم مسئول جنگ و قربانی باشم. اگر من اسلحه حمل کنم و قبل از اینکه کسی رو بکشم کشته بشم اون موقع نه تنها قربانی جنگ هستم، مسئول جنگ هم هستم. چون تصمیم گرفته بودم در جنگ شرکت کنم. بنابراین نه تنها قربانیم بلکه شرکت کننده در جنگ هم هستم موضع سورتجویان اینه قربانی شدن یک چیزه، مسئول شدن چیز دیگری اونها مسئول جنگ یا خشونت نخواهند شد این موضع سورتجویان هست اونها سوالات جالبی دارند که میتونند از شما بپرسند مثل اینکه که فرزن شما تصمیم بگیرید که کشتن درسته خب، اون موقع روش مسیحی برای کشتن چیه؟ اگر شما به کسی شلیک خواهید کرد روش مسیحی برای این شلیک چیه آیا به شکم شلیک می‌کنید یا به سر شلیک خواهید کرد سوالی مثل این مغز شما رو منفجر میکنه به نظر نمیرسه که راهی باشه تا بتونید مسیح رو در کشتن دخالت ندید نظریه مهم دیگری که اونها ارائه میدندن اینه ما میگیم اگر کسی خشونت نکنه همه ما باید قربانیان افراد شریر این دنیا باشیم جواب اونها معمولا چیزی مثل اینه هدف نهایی یک شخص جلال دادن خداوند هست نه حفظ کردن خودش حفظ کردن خودتون اولین قانون تمدن نیست اما بسیاری فکر می کنند که هست حتی بسیاری از مسیحیان هم فکر می کنند که هست اما در واقع اینطور نیست جلال دادن خداوند اولین قانون زندگی برای یک ایماندار هست شما شاید فرا خونده شدید که به وسیله مرگ یا زندگی خدا رو جلال بدید اما هدف شما در زندگی این نیست که خودتون رو از قربانی شدن حفظ کنید هدف شما در زندگی جلال دادن خداوند هست. اونها بحثایی مثل این میکنند که واقعیت اینه که کتاب مقدس پر از مثال هایی که رسولان هرگز شمشیری حمل نکردند بحث زیادی هستند که میتونن مطرح بشند و من به سورت جویان مؤمن و حقیقی احترام قائلم اما رو راست بگم من سلطجو نیستم چون ایمان دارم اگر در موضع سلطجوی یا در موضع عدم خشونت قرار بگیرم فکر میکنم چیزی که نهایتا میگم اینه که افراد شریر این دنیا میتونند اجازه داشته باشند که به کارهای شریرانشون و به خشونت هاشون بر علیه کسانی که میخوان در و آرامش زندگی کنند و زندگی معمولی داشته باشن ادامه بدن. دوتن از رهبران بزرگ کلیسه های عهد جدید پتروس رسول و پولس رسول هر دو به ما میگن که خدا معموران حافظ صلح قرار داده که اونها درست مانند یک خادم کتاب مقدس از طرف خدا معموریت یافتن خادم کتاب مقدس معمور شده که شریعت خدا رو مواظه کنه معمور حافظ صلح از طرف خدا فرمان یافته که شریعت خدا رو اجرا کنه در رومیان باب 13 و در اول پتروس 2:14 دو هر دوی این رسولان بزرگ این رو به وضوح به ما میگن خدا به ما مأموران حافظ صلح داده که قانون و فرامین رو نگه دارن و این مأموران صلح یا مجریان قانون توسط خدا فرستاده شدند تا مجری غضب خدا باشند بر علیه کسانی که شریر هستند و اعمال خشونت بار انجام میدن خدا در تصنیه 32-35 میگه انتقام و جزا از آن من است من تلافی خواهم کرد خداوند میگوید کسانی که معتقد به عدم خشونت هستند معمولا به این استناد میکنن رسولان که سرچو بودند ایمان داشتند خدا روزی داوری خواهد کرد پس اونها نباید داوری کنند داوری در آینده خواهد بود و در اون داوری ادالت خواهد بود اما به غیر از اون داوری آینده به قول پتروس و پولس، مجری غضب خداوند در زمان حاضر هم هست اون تا زمان داوری نهایی نزد تخت سفید داوری منتظر نمیشه. این اجرای غضب خداوند هست که همین الان توسط مجریان غضب اجرا میشه. این رسولان به ما میگن که اگر میخواهی از صاحب قدرت حراسی نداشته باشی آنچرا که درست است انجام بده که تو را تحسین خواهد کرد. زیرا خدمتگذار خداست تا به تو نیکویی کند. اما اگر مرتکب کار خلاف شوی به زیرا شمشیر را بی جهت حمل نمی کند او خدمتگزار خدا و مجری غضب هست تا کسی که مرتکب کار خلاف شود کیفر دهد. مفهوم و کاربرد اون این هست که وقتی او شمشیر را بر علیه شما به کار ببره، او خدمتگزار خدا هست حالا اگر به این مجریان غضب خدا باور می کنید پس باید باور کنید که مردمان شریر اجازه ندارند که برند بیرون و غارت کنند و بر علیه کسانی که میخوان در صلح و آرامش زندگی کنند اعمال خشونت کنند. اگر همه ما در 1940 صلح دوست بودیم، امروزه در روی زمین هیچ یهودی زندگی نمیکرد. چون که هیتلر همه اونها رو میکشت. این آشکار بود. تا جایی که به قوم یهود مربوط میشد، او قصد کرده بود که نسل اونها رو مطلقا از بین ببره. به اعتقاد من اگر نیروهای متحد وارد اروپا نشده بودند و در نهایت به برلین نرفته بودن، امروز یک یهودی هم زنده نبود. به نظر من، اکثر سورت دوستان به های این دنیا اجازه میدن که این کار رو بکنن. اما اگر سورت دوست نیستی، موزعی مثل موضع من بگیرید که به چیزی که پولوس و پتروس در رومیان 13 و اول پتروس 24 شرط داده باور کنید. به نیروهای نظامی باور کنید. وقتی این موزه را گرفتید، شما به جنگ و دفاع کردن باور خواهید کرد. ژنرال آیزنهاور که فرمانده نیروهای سرکوبگر خارجی بود که به نورماندی حمله کردند و از اونجا به برلین رفتند که با هیتلر به جنگن و بعد رئیس جمهور ایالات متحده شد، مادری داشت که دوست بود. او عضو کلیسای مسیح در تگزاس بود. ژنرال آیزنهاور به عنوان یک دوست بزرگ شده بود. وقتی که جشن 20 سال پیروزی برگزار شد با جنرال آیزنهاور مصاحبه شد در این مصاحبه از او پرسیدند وقتی که او بزرگترین گروه تفنگداران دریایی رو رهبری کرد، این واقعیت که مادرش سورت دوست بود آیا برای او مشکلی ایجاد نکرد او جواب داد بله راستش رو بگم مشکل بود اما زمانی که اولین کمپ اوسارا رو که آزاد شده بودند دیدم وقتی دیدم که نازیها در اون اردوگاه های مرگ چیکار کرده‌اند سولت دوستی دیگه مانعی برام نبود به این نتیجه رسیدم که حزب نازی هیتلر مثل سرطانی بود در پیکره جهانی و دقیقا باید قط میشد. وقتی من یکی از اون دو اردوگاه مرگ رو دیدم دیگه مسئله سولت دوستی برام مشکلی ایجاد نکرد اگر شما هم مثل آیزنهاور باور کنید که افراد شریری در این دنیا هستند که خدا میخواد مجریان قذبش قذب خدا رو بر اونها اجرا کنند، و معتقد به نیروهای نظامی منسجم باشید نیروهای حافظ صلح مقتدر و به جنگ معتقد باشید سال بعدی این خواهد بود اگر به جنگ معتقدید آیا به جنگ نابود ایمان دارید؟ بسیاری در نبرد بزرگ که بهش بزرگترین جنگ ها گفته اند، جنگ جهانی اول در 1918 شرکت کردند. 20 سال بعد پسران کسانی که در اون جنگ ها شرکت کرده بودند مجبور شدند، برگردند و با همون افراد بجنگند که پدرانشون در 1918 جنگیده بودند. وقتی که آلمان در پایان جنگ جهانی اول فت شد اونها جنگ نابود کننده نکردند. حتی یک پیروزی قطعی هم به دست نیاوردند چون که 20 سال بعد اونها توانستند دوباره جنگ را بندازند. به اعتقاد من جنگ ویتنام جنگ زشتی بود. در ویتنام قوانینی حاکم نبود. سربازان خوب کشته شدند چونکه بچه های کوچک می آمدن و نارنجک را به دست اونها میدادند و خودشون به همراه اون تفنگدارها کشته می شدند. وقتی این اتفاقها افتاد بعد از گذشت مدتی سربازان مجبور شدند از جایی که بودن به بچه ها شلیگ کنند چونکه در ویتنام حتی نمی توانستند به کودکان نیز اعتماد کنند. بسیاری از انسان ها امروزه با احساس گناه از چنین وقای ای زندگی میکن. چیزهای وحشتناکی که مجبور بودند در جنگ انجام بدن، چیزهایی که هرگز قادر نخواهند بود فراموش کنند. به هر حال حقیقت این بود که اون جنگی بود که ایالات متحده هرگز قصد نداشت که در اون پیروز بشه. این آزاردهنده ترین چیز برای مردانی بود که در اونجا می دن. و پرسیدن اینکه چرا باید در جنگی فرسایشی که قصد پیروزی در آن نیست شرکت کرد که در اون پنجا هشت هزار شدند. و هزاران هزار نفر زخمی و معلول شدن غیر اخلاقی و غیر انضباطی محسوب شد یکی از جنرال های بزرگ ما ژنرال داگلاس مک آرتور گفته خونریزی و وحشت جنگ بسیار عظیم هستند و تنها راهی که میتونید جنگ رو توجیه کنید اینه که به اون سرعت ببخشید و به پیروزی قطعی برسونید جنگ وحشتناکه در واقع اونقدر وحشتناک و مهیبه که تنها جنگی که احتمالاً میتونم در اون شرکت کنم جنگی که پیروزی به همراه داشته باشه اگر همه این چیزها رو بررسی کنید و به آیاتی که اشاره کردم و بسیاری آیات دیگه آیا دلیلی داره که بگید خدا چطور میتونه فرمان جنگ بده و وقتی خدا فرمان جنگ میده آیا معقول هست که فکر کنید تنها نوع جنگی که خدا فرمان میده میتونه جنگ نابود کننده باشه که به طور قطعی پیروز بشه و صلحی پایدار به همراه داشته باشه اینها برخی عقاید درباره جنگ‌های کننده بود و ما نیاز داریم که وقتی کتاب‌های تاریخی کتاب مقدس رو میخونیم در این باره بیشتر فکر کنیم. باز هم میگم تنها کسانی که در مورد کتاب مقدس سؤالی ندارند کسانی هستند که هرگز کتاب مقدس رو نخوندند. اگر کتاب مقدس رو بخونید سوال خواهید داشت. و این یکی از سوالاتیه که مطمئنم وقتی کتاب‌های تاریخی رو می‌خونید خواهید پرسید. مطلب بعدی که با شما در میون خواهم گذاشت، یک سری ارتداد هست که هفت بار در کتاب داوران پیش میاد. ما متوجه میشیم که این دوره ارتدات ها که در بارش در این کتاب دوم تاریخی عهد قدیم میخونیم، در کشورهایی مثل آلمان، انگلستان و امریکا هم میتونید نظیرش رو ببینید. این دوره وحشتناک رو با تمامی عواقبش میتونیم در کلیساها، در مذاهب، دانشکده های مسیحی و سایر سازمان های مسیحی ببینیم. مهمتر از همه این چرخه ارتداد میتونه در زندگی من و شما هم دیده بشه. وقتی به کتاب داوران میرسیم کتابی رو میبینیم که 400 سال از تاریخ قوم یهود رو دربر میگیره. این تاریخ زیادیه. بین کتاب پیدایش و خروج 400 سال فاصله بود. بین عهد قدیم و عهد جدید حدود 400 سال فاصله زمانی هست و کتاب داوران یک دوره 400 ساله رو دربر میگیره. کتاب یوشه با مرگ موسا و معموریت جانشین او یوشه آغاز شد. جمعه آغازین در کتاب داوران مرگ یوشه رو ثبت کرده و فقدان رهبری که بعد از مرگ او رهبری رو به عهده بگیره. یوشه در تربیت جانشینی که نقش رهبری او رو ادامه بده موفق نبود. از یک جهت کتاب داوران یک خلای رهبری رو شرح میده که پیامد این واقعیته که یوشه در تربیت جانشین برای خودش موفق نبوده. این مرد رهبری بزرگ بود او در انجام کارهای خدا سهم به سزایی داشت. در سرتاسر کتاب داوران متوجه میشید که همه این داوران در تربیت جانشینی که نقش رهبری اونها را ادامه بدن ناموفق بودند. در حالی که داوران به عنوان رهبران خوبی زندگی کردند اما به محض اینکه مردند به نظر می رسید که دیگر رهبری نیست و یک خللا رهبری بود. نویسنده کتاب داوران مشخص نیست همونطور که در بسیاری از کتاب‌های کتاب مقدس نیز مشخص نیست این دوره تاریخی ما رو از مرگ یوشه تا به دوره سمویل پیش میبره که 400 سال رو دربر میگیره آیه کلیدی کتاب داوران به ما میگه که در این دوره تاریخی در اسرائیل پادشاهی وجود نداشت و هر کسی هر کاری که به نظرش درست میومد انجام میداد این چهار بار در کتاب داوران گفته شده و به عنوان آیه کلیدی کتاب داوران محسوب شده و با توجه به این واقعیت که اینجا به پادشاه اشاره شده به نظر میرسه که این کتاب در طول دوره پادشاهان نوشته شده باشه اگرچه به زمانی مربوط هست که در اون دوره خلعه رهبری بوده و هیچ گونه رهبری نبوده بسیاری از اندیشمندان بر این باورند که نویسنده کتاب داوران سمویل بوده کتاب داوران دوره زمانی رو در بر که رابطی هست بین زمان مرگ یوشه با زمان مربوط به دو کتابی که به نام سموئیل که رابطی هست بین زمان مرگ یوشه با زمان مربوط به دو کتابی که نام سموئیل رو بر دارن اول و دوم سموئیل این دوره زمانی هست که از آن به عنوان دوره تاریک تاریخ یهود یاد شده این پرسه زمانی بوده قبل از تقسیم پادشاهی و به رفتن پادشاهی شمال و جنوب پیغام وحشتناکی در کتاب داوران هست پیغام مربوط به مشکل اساسی هست سرطان روحانی که انواع پیامتهای وحشتناک به دنبال داره سرطان روحانی که بهش اشاره شده ارتداد هست کلمه ارتداد کلمه مرکبیه که تشکیل شده از دو کلمه آپو و استاسی به معنی خارج شدن از مسیر هست یادتونه که در پایان کتاب بنی اسرائیل موضع ایمان اتخاذ کردند. اونها گفتند ما می خواهیم خدا رو خدمت کنیم و خدا رو در اولویت قرار بدیم و از خدا اطاعت کنیم. یوشع موضع خودش رو اتخاذ کرد و گفت شما باید تصمیم بگیرید. اما تا جایی که به من و خانواده‌ام مربوطه ما خداوند رو خدمت خواهیم کرد. بعد قوم هم تصمیم گرفتند و گفتند ما خدا رو خدمت خواهیم کرد. اونها تصمیم گرفتند خدا رو خدمت کنند اونها این موضع رو اتخاذ کردند. حالا ارتداد دقیقاً اینه. شما در پایان کتاب یوشه ای مثل موضع بنی اسرائیل اتخاذ میکنید و بعدها ای خارج از موضع قبلی اتخاذ میکنید که به معنی خارج شدن از مسیر است. این معنی ارتداد هست. اونها هفت بار وارد این چرخه ارتداد شدند. میخوام مثالی برای این دوره تاریخی که هفت بار در کتاب داوران اتفاق افتاده بزنم. به این دوره طوری فکر کنید که اون مثل صفحه یک ساعت هست. اونها ساعت دوازده شروع کردن به اولویت دادن به خدا با خدا صادق بودند، و او رو خدمت می و خدا را در اولویت قرار دادند. اما بعد حدود ساعت یک اونها مرتکب ارتداد شدند. اونها از جایگاهی که در پایان کتاب یوشه اتخاذ کرده بودند برگشتند. وقتی که از موضع اصلی خودشون برگشتند، جایی که خدا در اولویت بود، و اونها با خدا صادق بودند و از او اطاعت می در ساعت دو اونها شروع کردند به تجربه عواقبی که اغلب به دنبال ارتداد میاد. اونها فساد اخلاقی رو رواج دادند. در ساعت سه اونها فساد سیاسی رو گسترش دادند و بعد در حدود ساعت چهار در این چرخه خدا دشمنی رو برانگیخت. این میتونست از کنانی ها باشه یا از مدیانی ها یا از معی ها یا از فلسطینی ها. خدا دشمن بزرگی رو برانگیخت. در تمام این مدت خدا سعی میکرد با مردمش ارتباط برقرار کنه. اما نتونست توجه اونها رو جلب کنه. پس خدا دشمنی رو برانگیخت و در ساعت پنج جنگی بود و اونها توسط دشمنی که خدا برانگیخت مغلوب شدند. بعد وقتی که در جنگ مغلوب شدند ساعت شش شده بود. در ته صفحه ساعت. در اون ساعت اونها شکست رو تجربه کردند. اونهایی که کشته نشده بودند اسیر شدند اونها به مدتهای متفاوتی در اسارت بودند گاهی هفت سال گاهی هشت سال و گاهی حتی تا چهل سال طول می کشید همونطور که در مورد فلسطینی ها بود بعد از اینکه مدت مدتها در اسارت بودند اونها دوباره به سوی خدا بر می گشتند. اونها در ساعت هفت نزد خدا دعا و ناله می و بعد در ساعت هشت اونها توبه میکردند و در ساعت نه روحانی انجام می میشد و وقتی اونها دعا توبه و احیاء رو تجربه کردند خدا اون موقع در ساعت ده داوری برمیانگیخت. این داور تبدیل به آزاد کننده میشد. گاهی به او ناجی میگفتند. همونطور که موسا اونها را از مصر نجات داد. در ساعت یازده این داوران یا ناجیان اونها را از قومی که بر اونها قلبه یافته بودن نجات میدادند. باز دوباره ساعت دوازده میشد. باز هم دوباره بالای صفحه و خدا در جای درست خودش قرار می گرفت. اونها خدا رو خدمت می کردن و با خدا صادق بودند و خدا به قومش برکت میداد. های مختلفی بوده که صلح بوده و همه چی درست بوده چون که داوران خدمات بزرگی داشتند و اونها را به سوی خدا برمیگردوندند و وسیلهای ای میشدند برای انجام احیای روحانی. اونها در بعضی مقاطع به مدت حدود هشتاد سال در صلح بودند اما بالاخره این سرطان دوباره نفوظ می کرد. ارتداد روحانی و دوباره اونها همون چرخه رو تکرار میکردن اونها هفت بار در طول کتاب داوران همین چرخه رو تکرار کردند حداقل دو کاربرد برای پیام اساسی کتاب داوران هست یادتون باشه که ما همیشه دنبال کاربرد حقیقی در کتاب های کتاب مقدس هستیم کاربرد حقیقی کتاب داوران چیه؟ اون حداقل در دو بود میاد. اولاً کاربرد شخصی هست، دوباره برمیگردیم به تمثیل نجات که در پیدایش و خروج شروع شد اگر ما تشخیص بدیم که نجات اونها از مصر درست مانند نجات ما از گناه بود اگر ما سرگردانی در بیابان رو تشخیص بدیم اگر ما در ورود به کنعان و فتح کنعان اونها رو درک کنیم تصویری از خودمون به دست خواهیم آورد که از مصر روحانیمون نجات یافتیم و وارد سرزمین وعده برکات روحانی کنان شدیم بعد وقتی به کتاب داوران میرسیم میتونیم اونها رو درک کنیم چون که کاربرد حقیقی در بعد شخصی میتونه این باشه وقتی که شما از سرزمین مصر روحانیتون آزاد شدید و سرگردانی بیابانتون رو داشتید و وارد کنان روحانیتون شدید شما دارایی های روحانیتون رو تصرف میکنید شما به لحاظ روحانی وارد شدید آیا امکان داره که سقوط کنید آیا امکان داره که مرتکب ارتداد بشید؟ به عبارت دیگه آیا امکان داره که لغزش بخورید؟ کتاب داوران میگه بله امکان داره. واقعیت اینه که کتاب داوران میگه همونطور که در کتاب تصنیه و نیز توسط پولس رسول به ما هشدار داده شده اونهایی که فکر میکنن مقاومند مراقب باشن وگرنه میافتن. در کتاب داوران کاربرد شخصی حقیقی اینه. آگاه باشید وگرنه سقوط میکنید. آگاه باشید وگرنه وقتی که وارد سرزمین کنان شدید و فتح کردید معنیش این نیست که نمیتونید بلغزید. کتاب داوران بارها و بارها به ما نشون داده بر اسرائیل به صورت جمعی سقوط کردند. کاربرد شخصی اینه که ما میتونیم به طور شخصی وارد این چرخه ارتداد شخصی بشیم. ما هم متعهدیم خدا رو در اولویت قرار بدیم. همه ما زمانهایی رو داشتیم که تعهد بزرگی نسبت به خدا داشتیم اما بعد سقوط کردیم. وقتی سقوط کردیم متوجه شدیم که این نشانه‌ها وارد زندگی ما شدند ما به خاطر اینکه در زندگیهامون شخصاً مرتکب ارتداد شدیم تمامی این چرخه عواقب رو تجربه کردیم بعضیها بر این باورند که دومین کاربرد کتاب داوران و پیغام اون کاربرد اجتماعی داره آیا امکان داره درست مثل قوم اسرائیل که بارها در کتاب داوران از این چرخه عبور کردند امروزه اقوام دیگر هم از این چرخه عبور کنند؟ بلی، این خیلی روشنه مثلا آلمان رو در نظر بگیرید؟ این سخته که گاهی درک کنیم آلمان روزگاری گهواری ایمان ما پروتستان ها بوده وقتی الان به آلمان فکر میکنید شاید به هیتلر فکر کنید شما وقتی به آلمان فکر میکنید واقعا نباید به هیتلر فکر کنید وقتی که به آلمان فکر میکنید باید به مارتین لوتر فکر کنید باید به جنبش عظیمی که او پدید آورد و به این تحول عظیم فکر کنید اگه خودتون رو پروتستان میدونید پس باید بفهمید که منبع پروتستان از آلمان هست زمانی بوده که آلمان ستاد فرماندهی خدا بود اما بعد آلمان مرتکب ارتداد شد وقتی که دانشگاه‌های بزرگشون شروع شد به جایی رسیدن که خدا رو با فلسفه منطق و انسانگرایی معاوضه کردند اونها وارد چرخی ارتداد شدند و عواقب به اون رو دیدن بسیاری بر این باورند که این در کشورهای دیگر هم انجام شده اون در سرزمین مقدس هم انجام شده زمانی بود که سرزمین مقدس قرارگاه مرکزی خدا بود خب بعد چطور شد که خدا قرارگاهش رو به ترکیه، افسوس و به تمامی اونجاها منتقل کرد به خاطر این بود که مردم سرزمین مقدس مرتد شدند چطور میشه که یک باره به نظر میرسه خدا از انگلستان خارج میشه. خیلیها ها بر این باورند که امریکا اساس بزرگی بود که خدا بر اون کار کرد. اما هرگز پیغام کتاب داوران رو در بعد قومی یا اجتماعی فراموش نکنید. وقتی که عیسی در یک شنبه قبل از عید قیام وارد اورشلیم شد، یادتونه که او به رهبران مذهبی چی گفت؟ او گفت اگر شما برای پادشاهی خدا می و نیاورید، خدا پادشاهی رو از شما خواهد گرفت. و اون رو به قومی خواهد داد که میوه بیاورند چیزی که او می در واقع این بود اگر شما برای پادشاهی خدا میوه نیاورید خدا ستاد فرماندهیش را از اینجا خواهد برد عیسی گفت تعهد به خدا مانند افتادن بر یک سنگ است یا شما بر این سنگ میفتید و شکسته میشید و یا این سنگ بر شما خواهد افتاد و شما را خرد خواهد کرد اگر بعضی از صورتجلسه های کنگره امریکا را بخونید میتونید چیزهایی راجع به منشاء روحانی کسانی که این قاره رو تشکیل دادن پیدا کنید. اما وقتی ارتداد و فساد اخلاقی و فساد سیاسی را ملاحظه کنید، خواهید دید که امریکا از میراث خدایی منحرف شده. میدونید بزرگترین کلیسای دنیا کجا هست؟ در کره یا نیجریه یا در چین هست. این امکان هست که خدا ستاد فرماندهیش رو به خاور دور منتقل کنه و شاید به مدت دویست سال از اونجا کارهاش را اداره کنه. بعضیها فکر میکنند که این چیزیه که ما میتونیم از کتاب داوران یاد بگیریم لازم نیست که تا ساعت شش صبر کنید تا احیا بشید و به طرف خدا برگردید. چرا در ساعت چهار به خدا بار نمیگردید چرا در ساعت سه به خدا بار نمیگردید چرا قبل از اینکه که عواقب وحشتناک به و مخرب رو تجربه بکنید به خدا بار نمیگردید این پیغام بزرگ کتاب داوران هست این چیزیه که انبیایی مثل بیلیگراهام سعی دارند به ما بگن ما به تجدید حیات روحانی نیازمندیم اما اگر تجدید حیات روحانی نباشه اگر بازگشت به سوی خدا نباشه اون وقت مجبور خواهیم بود که به ته صفحه ساعت برسیم این کار بردی وحشتناکه اون رو شخصا بپذیرید یا به صورت قومی بپذیرید خدا میخواد که شما در ساعت 12 باشید جایی که با خدا صادقید و با او خدمت میکنید و او در جایگاه اول قرار داره این پیغام مرکزی کتاب داوران هست. دانشویان عزیز در گام زدنتون با خداوند در کجا قرار دارید؟ حقیقت رتنگیزی که در کتاب داوران میبینیم، اینه که خدا ما رو دوست داره و به ما اهمیت میده و مایله که رابطه سمیمانه با ما داشته باشه. اگر تا کنون به اون ایمان نیاوردین و از او نخواستین که خداوند و شاه زندگی شما باشه، امروز این کار رو بکنین. اگر در راه های اون گام بر نمیدارین، توبه کنین و به سوی اون بازگشت نمایین تا تنبیه محبت آمیز اون رو تجربه نکنین. حقایق زیادی هست که ما باید از کتاب داوران یاد بگیریم. پس ترتیب بدین که جلسه بعد همراه ما باشین تا با همدیگه مطالعه کلام خدا رو ادامه بدیم تا اون موقع باشد که در ایمانتون رشد کنین و شادی و آرامش خداوند ما با شما باشه